جلسه 42 قواعد فقه و قواعد مربوط به هم و مهم قواعد تضامن مساله با مسال 141401 محسی آموزشالی حوزفی ممرزا علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلی الله علی و سیدنا و نبینا ابل قاسم محمد و علی و اهلویت طاهرین المعصومین سیم و الله فی الارضین روحی و عرفه العالمین له فدا با به بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهلویت ادخار علیه و السلام ادامه بحث رو در بحث اهم و مهم رای را خواهیم داد. به فرمایت ادعا بحثی که بحثی این که خدمت شما ارز کنم بحثی که ما داشتیم این بود که بحث یه سری قواعد مربوط به تضاهم به این مساله رو ما میتوانیم بین در مربوط ناظر به میار زمان داشته باشیم یه موردش این بود که تقدیم مسلحت دائمی بر مسئله موقع یک موردش هم این که در واقع ترجیح در واقع زمان یک مسلحت در زمان مسلحت دیگه بود مثلا فرض بگیریم با مثال عرفی اگه بخوایم بگیم یه موقع مثلا شما در تابستان ماشین رو یک جا پارک میکنید خبیه یک مسلحتی داره یه زمان دیگه یه جای دیگه پارک میکنید دو مورد خاص حالا اگر شما یه زمان برای شما مسلحت خاصه برای شما ترجیح داره در واقع خود میزان مسلحتش نیست زمان اون مسلحته شما مثلا اگر ساعت ده برید به خیابان الف برسود اونجا پارک کنید با زمین ساز میشه که شما یا آقای رو ببینید اما زمانش اگر متفاوت باشه نه دیگه اون آقا رو نمیبینید خود یک زمان برای شما ترجیح داره یه بحث اینه که مسلحت دائمی در مصلحت موقت مقدم بشه خب مصلحت دائمی بر مصلحت موقت این یه مقداری ممکنه در ظاهر یک معیار باشه در واقع در برخی از موارد خود این در واقع دو مصلحت دائمی و مصلحت موقت می توانند با هم خلاصه مقایسه بشن و مقایسه واقعی مقایسه و موازنه واقعی پیدا میکنند اما یه جاهایم هم در واقع اینها میار نیستند در برخی از موارد این دو تعبیر حکایت از کمیت مسلحت حاصله هستند در واقع به تعبیر دیگه یکی در واقع مصلحت دائم نشاندهنده نشان دهنده و اشاره کننده به میزان مصلحت یعنی به زمان کار نداره و دیگری به مصلحت موقت در واقع از این جهت با میزان زمان و در واقع استمرار زمان به صورت در واقع سانوی و نشان شناسانه بلا ما کار داریم خود زمان برای ما مهم نیست بلکه در واقع میخواییم بگیم که خود اون مثلت کمیتش کمه یا نه در این صورت خلاصه معیار اصلی همون میزان مصلحت اما در برش در افق و برش زمانی است که در واقع کمیته دو مصلحت خلاصه قابل مقایسه اند در برخی موارد خلاصه اینطور نیست برخلاف مواردی که کمیت خلاصه دو مصلحت مورد مقایسه به صورت همزمان خلاص حضور دارند و وجود دارند این تفاوت داره در مجموع این هم الان یک مهاره. اگر خلاصه اگر... مسلحت رو در این معیار به صورت مس در واقع موازنه کمی مسلحت مد نظر باشه در واقع این مورد این قاعده قاعده مستقل نخواهد بود بلکه از فروات در واقع فروات در واقع تقدیم اکبر و مسلحتن خواهد بود ها یه موردش اینه که هر دو مستعد در صورت همزمان خواهد بود اینجا فروات میگیم بگیم به تحقیل دیگه از مسادیق اکبر و تقدیم اکبر مسلحتن خواهد بود چون که خلاصه دو مسلحت میتوانند به صورت همزمان هم خلاصه حاضر باشند و موجود باشند این نه یکیش اینکه که در یه زمان هست و یکی طولایی طرف اول از فروعات اون خواهد بود خلاصه این رو به صورت مستقل میشه یه قاعده مستقل حساب بکنیم و خلاصه این رو باید یه دیای تعبیر دیگه حساب بکنیم از یا از مسادی رو اون حساب بکنیم خلاصه این یه چیز مستقلی نیست این هم یه قاعده یک قاعده قواهد پس اینطوری ما داریم. یه سری قواعد هم ما داریم به این زیر مجموع مقایسه این دو مسلحلح مربوطه، اما زاویه بحثش متفاوته، البته تمام اینها می توانند در واقع سیاق تعبیری خاص خودشون رو هم داشته باشند. اون مهم نیست. مهم نیست مهم نیست که اینا رو بتوانیم از هم واقعا تفکیک بکنیم یا تفکیک نکنیم مثلا تو این مورد از طرف اون مسلحت بزرگ صحبت میشه اون مسلحت اهم یه موقع ممکنه از طریق اون سیغه در راقه مسلحت فرعی بیاریم مثلا هم بگیم این تعبیر عربی که گفتم یک دائمی طولانی کوتاه مثلا بگیم اولقیت المصلحه و طارئه تسلیب به تحصیل المصلحه دائمه او طیلت المد اینا دیگه سیاق ای که از این ور ما این, این مسلحت رو بخانیم یا از اون ور نگاش کنیم این سیاق تعبیریه ولی به هر حال معیان اینه که ما باید سعی کنیم اونها رو از هم جدا بکنیم خب موارد دیگه داریم که زاویه بحثش متفاوته یکی این که مثلا بیاییم بگیم مسلحتی که به افراد یا مجموعهای کچکتر میخوره با مسالهی که به مجموعه‌های آمتر میخوره این رو هم ما بیایم با هم مقایسه کنیم بر اساس در واقع میزان افرادی که مسلحت به اونها متوجه میشه خود این الان یه شاخص بسیار مهمیه میتوانه مد نظر قرار بگیره ما مقایسه کنیم بگیم که این هم خودشی شاخصه در واقع تقدیم حالا هر سیغه تعبیری که بخوایم بگیم در واقع تقدیم مسلحت بگیم بگی متعلق به افراد بیشتر این خودش بشه یک معیار حالا یه تعبیر سیقه تعبیری داریم میگه تقدیم المسلحه تلتی تعلق به افراد او مجموعه صغیره من اجل المسلعه ببخشید این تأخیر شد من اجل المسلعه تلتی تعلق به مجموعه به مجموع اکبر خب در واقع عکس تعبیر دیگه چیه اکثر و نفعا اگه خاطرتون باشه در اون تعبیری که آقای عبدالمجید سوسفه به کار می‌براد تقدیم یا بگیم انفع انفع به حال افراد مختلف حالا انفع بحث کردیم متفاوت ممکنه باشه ولی منظور این که هر تعبیری که بخوایم بگیم چه از طرف مسئله کم چه از طرف مصلحت بیشتر بیایم از این بر یا از اون بر فرق بحث اصلی ما این باشه که بگیم یک طرف مسلحتش به افراد کمتر یک طرف به به افراد بیشتر برسه خب اگر اینجا ما در نظر بگیریم یه بحث خاصی دیگه بره ایجاد میشه. ما میخواییم بگیم که یک نفر یا چند نفر خب خود این هم فرض های مختلفی میتوانه داشته باشه ما در واقع فرض ساده در این یا در این قاعد اینه که چیه این از که مسلحت که به صورت مساوی برای افراد مختلف لحاظ بشه در این صورت نتیجه چی خواهد بود؟ در این صورت میزان مسلحتی که به افراد مختلف افراد یا بگیم به مجموعه بزرگتر به تعداد بزرگتر بلسه متوجه خواهد شد در مجموع بی در واقع بگیم یا اون حاصل جمعه مجموعه مصالحی که یا منافعی که مجموع بزرگتر متوجه خواهد شد به اونها خواهد رسید بیشتر از در واقع یک مصلحت متوجه به جمع کوچکتر خواهد بود از جمعی که ما داریم جمع این مسلح مساله با جمع اون مساله قابل مقایسه هستند یه سری مساله کمتر بیشتر از اون یکی خواهد بود پس اینجا میار سرجمع این مساله متوجه به افراد مختلفه خب طبیعتاً اینجا شما باید بگید که این به یه کمی کم کمی برمیگرده ما مثلا بگیم که آب اگر در دوران بین دادن مسلحت به افراد کمتر و بیشتر باشد اینجا مساله که به مجموع بزرگتر میرسه بیشتر از در واقع مجموع مساله خلاصه اون جمعه کوچکتره. خب اینجا ما بستگی داره اگر مثلا کاس کارانه بخوایم نگاه کنیم منفعه جویانه اون بازاری بخوای نگاه کنه میگه بهتر که مثلا خیلی پول خرج نکنیم اما اگر آدم کریمی باشه اینجا دوران بین این خواهد بود که مثلا ما یک ماشینی بفرستیم فرض کنیم دوتا کشور نیازمندن دو تا شهر نیازمندن دو تا روستا زلزله دیدن ما ساالله هی... یه ماشین بیشتر نداریم اگر جمع جمع امکان داشت امروز این روستا فردا اون روستا خوبت نداره یه کارش میکنیم اما اگر فقط یه جا میشه بره بنزین چندان نداره میشه یه جا جاوره ترریتا ما باید اینجوری اون شکل بسيطه و فرض بسيط رو در نظر بگیریم در واقع خب تقدیم میتونه این باشه اینو الان ما کار نداریم از این جهت می در این صورت در واقع این قاعده این قاعده چه بسا در واقع قاعده مستقل مستقل از تقدیم خلاصه کمی نباشه در واقع قائل مثل اینه که با این فرض تفاوتی نخواهد داشت که دو مورد باشه تقدیم در واقع اکبر و نفعن یا اعظم و نفعن خلاصه نخواهد داشت چرا محتواش خیلی شبیه اونه فقط مصلاقش فرق کنیم. ویژگی مصلاقش به این چه ربطی داره خب اما اگر فرض بسیط رو این نگیریم فرض دیگه چی باشه در راقه این باشه که مجموع مساله مجموع مساله متوجه جمعه اول بیش از مجموع مساله متوجهه جمع دوم نباشه بلکه صرفا تعداد افراد مد نظر باشه در این صورت می توان اون رو در واقع قاعده مستقل حساب کرد اون قبلی چیز خاصی نداشت بلکه صرفا خلاصه به جای توجه در واقع مسلحت به یک فرد به چند نفر خلاصه توجه پیدا کرده بود و مسلحت به اون افراد متنوع رسیده بود مسلحت صرفا به جای توجه به یک نفر به چند نفر در هر دو طرف خلاصه تضاهم متوجه شده بود اونجا میشد به اون قاعده برگرداند هر حکم اونجا داریم اینجا هم داشته باشیم در نتیجه عدله و تبیین، طبیعی و استدلال برای اون قاعده میتوانه شامل این قاعده هم در واقع این قاعده هم بشود بلکه در واقع این مورد زیل همون قاعده باید تعریف شود اما فرض دیگه این بود که نه مجموعاً خلاصه متفاوت باشه اون قاعده دیگه اینه پوشش نمیداد چنان که اگر در واقع اگر دو مجموعه تعداد افراد مساوی داشت مساوی تصاوی اونها داشتن اون هم در واقع نیاز به بحث مستقل داشت، نیاز بود با این که در واقع ما بیایم مجموعه مساله رو بررسی کنیم. اگر دو مجموعه تعداد افراد مساوی داشتن و مساله مساوی هم به دو طرف خلاصه میرسی، این هم میتواند خلاصه مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره اگر در واقع صرف بر مثلا کمیت افراد مهم محسیه در واقع به معیار در مجموع خلاصه باید در نتیجه باید دید که آیا آیا تعداد خود افراد در این قاعده موضوعیت داره در این صورت خب خلاصه میتونه مد نظر قرار بگیره یعنی که نه، تعداد افراد که اینجا اهمیت داره چون که اگر مساوی بودند اینم میتوانش مورد بررسی قرار بگیره بنابراین ما بعد تو تحلیل این قاعده ببینیم چی مدد نظره خب آیا تعداد مثل این که شما بفرمایید مثلا یه پدری میخواد جایزه بده یا یه عالمی میخوام بیام یه هدیه بده میخوام خلاصه یک... یا یک نظامی میخوام یه جشنی بگیره گویا اون کمیت جایزه مهم نیست بلکه ته شادمانی به اینه که تعداد افراد بیشتر باشه خب برمیگرده به موارد اگر در واقع تعداد افراد موضوعیت داشته باشه و حجم و در واقع حجم یا میزان مساله در واقع مجموعه اون مساله عدد نظر نباشه مساله خلاصه اونو بذاریم کنار این قاعده خلاصه استقلال خواهد داشت و اسباتش باید از طریق مستندات خاص خودش خلاصه اثبات بشه و مستنداتش لزومن نمی توانه همون مستنداتی باشه که خلاصه برای خلاصه برای اثبات تقدیم اکبر و نفعن و ااعمون ن خلاصه اینجا مورد استفاده قرار گرفته باید این دلیل خاص خودش رو بیاره چرا چون اینجا موضوعیت پیدا که تعداد افراد؟ خب لذا اون سیاق سیاق تعبیری هم خیلی تاثیر داره. در نتیجه اینجا، هر سیغه تعبیری نمیتوانه اینجا کمک حال این قاعده باشه اگر ما گفتیم تقدیم مسئلات متعلق به افراد بیشتر مد نظر باشه نه این دیگه محدودیت ایجاد می کنه و مستنداتش متفاوته خب حالا اگر خود ما باشیم با این نگاه عرفی در بعضی جاها واقعا میتوانه تعداد مد نظر باشه در برخی از موارد در نگاه عرفی اگر ما بخواییم از مستندات عرفی استفاده کنیم بگیم عرف اقلا بحثی داره در نگاه عرفی همواره اینجور نیست که به هر حال که نگاه به میزان مثلحت خلاصه مد نظر باشه بلکه در برخی موارد خلاصه تعداد افراد موضوعیت داره چنان که در برخی موارد دیگه نه چنان که در اون موارد به مورد داره نیزان و سرجمع مسالح و به نظره از بستگی به مورد داره اگه اینطور باشه در واقع ما کنده دو قاعده خواهیم داشت با هر کدوم از این هر مورد از این موارد باید مشمول قاعده خاص خود بشه بلو این که خلاصه ظاهر این دو مورد تشابه داره اما نه بستگی داره مثل این که در اون بحث زمان هم همینطور گوهی خواهد یک مسئله دائمه بخصو اگر اینها رو ترکیب کنیم مثلا که یک مثلت دائمی به افراد زیاد برسه ولی یک مثلت محرقتی به یک فرد یا بالعکس بستگی داره به موارد پس ما الان در مقام ممایسه ببخشید لیست کردن و یه نوع تبیین اجمالی توصیف اجمالی از قواعدی هستیم که در ذیل تو مصلحت بتواند تضاهم پیدا بکنه خب حالا اینجا یه تعبیر بسیار مهمی ما میشه داشته باشیم یک سوال مهم این سوال مهم چیه اینی که الان ما میگیم مصالح عامه در مصالح فرد مقدم بشه آیا تقدیم مساله عمومی بر مصالح خصوص افراد خاص خلاصه مشروعیت داره این یه مسئله مهمیه من این مقدمه رو که عرض کردم خواستم یه مقداری این اولا این رو در نظر بگیریم. پس یه تعبیر تقدیم مسئله متعلق به افراد بیشتر شاید تو تعابیر خاصی به کار بره. اما یه تعبیر دیگه هم چی داریم؟ تقدیم مصالح عمومی بر مصالح در واقع خاص بر مسئله عمومی بر افراد مسئله افراد خاص هایا این مشروعیت داره یا نه اولا این مصداق همین بحث شد تقدیم مسئلهت افراد بیشتر حالا اسمش میذاریم مسئله عمومی در واقع این شد یه سیغه تعبیری برای این ولی تحلیلش به چی برگشت همون تعبیر رایجی که ما داریم از اون طرف میگیم آقا مسائل افراد خاص قربانی بشه تزهیه بشه اون یه سیغه تضیه از اون طرف بشه اینم از این بعد خب از این مصالح عمومی یک محتوایی داره اگر مسائل در واقع مفهوم مصالح عمومی نازل به مصالحی باشه که به افراد به اکثریت جامعه اکثریت یا تعداد معتنابهی از افراد جامعه برگرده در واقع شما باید با افراد خاص مقایستش کنید به اون مفرض ساده و پیچیده که قبلا مطرح کردیم یک داره نزدیک میشه پس یه یه که گاهی خواهد ما این رو یه مف... مفهوم مستقل میگیریم یه موقع میگیم مسال عمومی یعنی تعداد افراد بیشتر در واقع این مفهوم میتوانه در واقع محتوای این قاعده به مقایسه تعداد کمی افراد جامعه میپردازه خب پس باید ببینیم معیار چیست آیا در این صورت اگر بخواییم شاخص رو به دست بیاریم باید دید که در واقع معیار اصلی چیست برای ترجیح برخی مسالح بر برخی دیگه کدامه آیا صرف اکثریت داشتن یک جمع بر افراد دیگر یا خلاصه بر یک فرد معیار است یا اون که در واقع به دنبال توزیع مسالح بیشتری. اگر در واقع، مساله توزیع مصالح مد نظر باشه این ممکن بحث رو تغییر بده بگیم آقا ممکنه مصلحت یک مذهبی باید به یک فرد برسه بیشتر باشه چه بسا در برخی از موارد در واقع مصلحت متوجه یک فرد اهمیت بیشتری داشته باشه چرا که در واقع صرف تعداد افراد موضوعیت نداره درسته؟ چرا که در این فرض مستقلیه خب پس باید دید که بستگی به چه موردی داره و چگونه شما بحث رو خلاصه در نظر میگیرید و الا صرف مفهوم مساله یه اختزای خاصی داره خب پس مراد چیه آیا از شما توضیح رو میخواید ببینید یا اینکه مجموع و سرجم اگه سرجم مهمه ممکن مسئله یک فرد اهمیت بیشتری داشته باشه خب حالا اگر برگردیم بحث مح... اینجا یه بحث مهم اینجا مصلحت عمومی و تقدیمش بر مساله افراد خاص مشروعیت داره معلوم نیست و در پاسخ باید گفتش که باید گفت که بستگی به موارد داره بنابراین ما چیکار کنیم بنابراین باید نوع مساله عمومی خلاصه تحلیل بشه باید ببینیم موارد مساله عمومی رو مورد بررسی مستاقی کنیم قرار بدیم. چرا؟ چون که برخی از اونها ممکنه سرجم مسائل مدد نظر باشه و میزان مجموعه مسائل مدد نظر باشه در این صورت می میتوانه متفاوت باشه اوضاع تفاوت پیدا کنه در برخی از موارد خلاصه میزان مجموع مسائل مد نظره اما در برخی دیگه فقط تعداد افراد افراد برخوردار شونده از مصلحت مد نظرند میخوایم مثلا جشن بگیریم میخوایم همه رو به هر حال برخوردار کنیم یه مسئله مهمم هم که داشتیم قبلا اون بحثه مقایسه اهداف داشتیم اینکه می توانیم یه ترکیبی هم بکنیم در واقع اگر ما بیایم در نظام پاسخی خودمون بیایم یک فرض دیگه ای رو در نظر بگیریم خلاصه اون چیه اینکه ما بیایم بگیم به سطوح مساله متفاوته اون دیگه از این بحث کمیت یه موقع دور میشیم در واقع توجه به انواع مساله و سطوح مساله، مساله مساله ضروری غیر ضروری بحث رو به پیچیدگی بیشتری میرسانه اون رو باید جدا در نظر بگیریم یعنی ما تو این تحلیل بحثی باید ابتدا فرض سال، فرض ساده رو در نظر بگیریم و لحاظ کنیم و بعد با موارد دیگه خلاصه بپردازیم در بحث تجربی هم که معمولا ای همین کار رو میکنم وقتی میخوایی قاعده تجربی کشف کنن اول میرن فرض ساده رو در نظر میگیرین هرچند همواره اینگولت هم در این زمینه وجود داره که شما فرض های پیچیده رو وارد کردی بحث ها تفاوت پیدا میکنه خب اگر فرمایشی باشه قبل از قطع شدن بحث بحث صدا رو نداشته باشیم اگر بزرگواران فرمایشی داشته باشن استفاده کنیم بله ادامه دارم در خدمه ازیم جنبه آی شاکری، آی نوروزی، آی نجفی، آی علی مرادی، آی رزائی، دوستان آزر اگر فرماشی دارن بفرماییم من ارزم این قسمت این بود میخواستم عرض کنم که این نکته تقدیم مسائل عمومی بر مسائل افراد اولا تو تقسیمی که ما داریم پس الان حواسیمون باشه، اصلا مساله و مساله رو جدا در نظر بگیریم ای تو این قسمت ای به هر حال پیشیدگی ها زیاده حالا بفرمایده استفاده می‌کنیم اگر نکته باشه. ای باشه خب این من فکر میکنم بعضی بزرگوان که های به این بحث مساله عمومی که میپردازند یه مقداری اینها رو یکاسه میکنند در واقع همه مساله رو اینجا مبهمه از یه طرف که های تعداد افراد مد نظر یا مجموع مسئله ممکنه این آدم فکر کنه یه نتیجه اینطوری به ذهنش بیا ولی چه بسا خیلی مقام افراد این رو تفکیک نکنن چه بسا شاها شاخصهای دیگه رو هم بتوانید مطرح کنید که اونجا دیگه وارد بحث پیچیدگی ها میشی خب ببینید مثلا یه مسئله مهم این که یه موقع شما دارید اکرام میکنید دارید هدیه میبینید حقی نیست در مواردی که افراد صاحب حقی نیستند و خلاصه تلقی نمیشن، شما خودتون میخواید یه فیضی بدید اینجا دیگه این طلبکار نبودن در واقع اینجا کار ساده میکنه شما توانید دست در واقع فرد باز میشه که برای در واقع رساندن میزان در واقع مصلحت یا فایده به افراد بیشتر زمین پیدا میشه اما اگر کسی صاحب حقی باشه و طلبکار طلبی بشه دیگه نمیتوان در واقع حق اون رو نادیده گرفت و مسالله یا منافع مربوط به او رو به دیگران داد در واقع این خودش یه شاخص میشه در واقع برای تبیین خلاصه این مورد باید گفت که یه تفاوت اینجوری داره خب حالا یه جاهایی تو مسائل سیاسیگاه قات یه کمی پیچیده تر میشه شما یه جوامه ای دارید که حق ندارند ندارن ولی خود را تلبکار محسوب میکنن مساله سانوی میتوانه اینجا نظر قرار بگیره مثلا دهر منسازیه به طور نمونه به طور نمونه بهرمند شدن در واقع افراد جامعه از این بگیم مثلا فیوزات اجتماعی از بهرمندی های مادی جامعه که خلاصه لزومن حقی نیست حقی شرعی تلقی نمیشه اما مدیران جامعه، کارگزاران جامعه در واقع با تعریف چنین حقوقی برای جامعه و افراد کل جامعه، کل افراد جامعه میان چه کار می‌کنند؟ در واقع اقدام به تقویت مالی یا اعتباری جامعه می می‌کنند. خب اینجا نتیجه چیه؟ در این موارد اگر در واقع با نگاه کاملا شرعی بیاد نگاه صرف فقهی و شرعی اختضای خاص خود رو داره و صرف مسلح سنجی در واقع مسلح تندیشی خلاصه حقی برای همه یا برخی از افراد جامعه ایجاد نمیکنه چرا؟ چون که در واقع مسلحت اندیشی می به انهای مختلفی انجام بگیره خب خود مسلحت متفاوته و, و این مساله در واقع می توانند برای کارگزاران تکلیف ایجاد کنند بدون اینکه در واقع حق شرعی برای افراد به صورت ابتدا به ساکن ایجاد بکنند بلکه در واقع خلاصه نتیجه کار ممکن مشابه باشه اه، یا اه، حتی جانکار بزاران ممکن میگن اقا حقوق شما حقوق شما اما این واقعا حق ممکنه نیاره اون افراد خلاصه مجبور باشن و این مساله کار برای کارگزاران تکلیف ایجاد کنن که به برخی از افراد یا قشر وسیعی خلاصه حقوق اموری رو در واقع بگیم شبه حقوق، بگیم حقوق رو بپردازن حالا به جای تغییر حقوق تحویر دیگه ابتداعا باید به کار ببریم در واقع بگیم یک پرداختی داشته باشند. این مسئله مسئله متفاوته یعنی ریشه این ای تکلیف متفاوته یک موقع خود اونها حق شرعی شخصی دارند یه موقع ندارند کار درسته انتظاه حق ممکنه بشه حق در واقع شرعی ایجاد بشه هر چند خود کارگزاران از در واقع فرویزات بگیم یا بهرمندی هایی که بهرمنسازی های سازی افراد تعبیر به از مفهوم حق استفاده کنند اما ریشهشون نبوده در واقع امکانات یا به مندیهایی بد. ها میدن ولی در واقع این یک ئلحتی بوده این حال حق شرعی نمیاره، هر چند به اون افراد بگن که شما حق پیدا کردیم ما حق شما رو دادیم. یا حتی پس از برخوردار شدن حتی اگر، در واقع پس از برخوردار شدن بتوان تعبیر حق شرعی رو به کار برد. در واقع حقوق شرعی ایجاد بشه حقوق شرعی خاصی خلاصه ایجاد بشه. نه این مانه نیست یعنی در این صورت حتی اگر یه حقوقی هم خلاص ایجاد بشه این هم به معنای بحرمندی اونها از حقوق شرعی به صورت ابتدایی نیستند بلکه یه منشهی پیدا شده در واقع مثل هستنجی در این موارد مثلا سنجیه در واقع حاکمیتی حقوقی به صورت سانوی برای اونها ایجاد کرده خب این بحث جداست حالا تو بحث ماچی بود نکته این بود که تقدیم و تاخیر چگونه بود حالا یه بحث فرعی بود ام ام در واقع اینجا بحث تضاحم بود ما اصل نقطمون چی بود اینکه آقا معیار چیه در واقع ا چی بود منشع خلاصه حقوق در واقع تاثیر خلاصه مبدا حق در واقع بگیم تفکیک حقوق هم میتوانه در اینجا موثر باشه در خلاصه حل تزاهم آیا تزاهم سوریست یا ببخشید قاعده مستقل ایجاد میکنه تزاهم اینجا چیه آیا واقعا تزاهم حقوق حقوقی اصلا نیست در واقع اگر حقوق شرعی در بین باشد در واقع رفع تضاهم اونها از طریق در واقع قواعد مربوطه به تقدیم حقوق و تضاهم حقوق قلصه باید حل بشه خب در اینجا ما ادعا نداریم که اینجا حتما یه قاعده مستقل داریم در این یکی دو دقیقه اگر بزرگ باران فرمایشی دارن به کنیم و فرمایش دارید بفرمید خب فرمایشی نبود پس ما اجمالا اینجا آمدیم این قاعده رو حالا با سیعت تعبیری که میشه مطرح کرد بگیم تخییر مسلحتی که به افراد کوچکتر تعلق داره نسبت به مساله مربوط جماعت و مجموعه بزرگتر یا بگیم مسلحت عامه و مسلحت خاصه مقدم بشه خوب. یه نکته دیگه هم اینجا عرض کنیم در واقع در واقع معیار اینه که اگر اگر شاره به صورت خاص برخی از در واقع مساله متوجه به افراد خاص رو بر مساله و بگیم تأمین مساله در واقع افراد عام و جامعه رو مقدم کرده باشه این مسائل بر مسائل دیگر رو مرتب کرده باشه اونها مقدمه پس در واقع افراد بیشتر یا کل جامعه رو پوشش داده بشه در واقع ما دیگه تابع اون باید باشیم و نمیتوانیم توانیم. ما به صورت مستقل عمل بکنیم و در اینجا لذا این قاعده فرعی قید خواهد خود نمی توانیم در واقع بگیم اینا جز قاعده است یا باید در واقع به تقدیم مساله عام بر مساله خاص خلاصه پرداخت این قبائه این مساله آمن برخی مساله خواستن یعنی مربوط به افراد خواستن مساله آمن مربوط به افراد بیشتر اما تابع شر ما خب سآل اینه که آیا شر مساله عمومی رو مطلق ترجیح داده به نظر میرسه خیر در برخی موارد اونها رو مطرح نکرده مگر اینکه در سایر موارد ما باید در واقع تاسیس اصل بکنیم در سایر در پس در مواردی که دلیل خاص بر تقدیم در واقع مساله خاص وجود دارد در واقع نمیتوان خلاصه مساله آم رو در اونها مقدم داشت و لذا این استسلا خواهد بود و پیشگیری میکنه از تعمیم این قاعده اما اگر در سایر موارد این قاعده در واقع این میخواد پوشش بده قاعده تقدیم مساله عام در مساله خاص و افراد خاص در واقع عهدهدار خلاصه این ترجیح خواهد بود و و نیازی به در واقع دلیل خاص نخواهیم داشت و کارکرد این مسلحت خلاصه این قاعده این خواهد بود که اون موارد مشکوک رو زیل این قاعده خواهد بود و موارد خاص در دیکه دلیل خاص درباره اونها نیست ما دیگه حکر رو معلوم کرده ایم الحمدر